در دورهای مثل زمان خلیفه هارون و رشید زندگی می کردن. پریا و موجوداتی همانند اونا به هر سرزمینی یا هر دورهای تعلق دارند و بی تردید زمان حاضرم بسیاری از اونا رو اگه راهشو بدونیم می ببینیم. تو شهر بزرگی تو آلمان پینه دوزی با زنش چند سال قبل زندگی می کردن. اونا سخت کوش بودن. مرد تمام روز تو دکه ای گوشه خیابون مینشست و کفشای پاره رو وصله می کرد. زنش میوه و سبزیجاتی رو که تو حیات خونشون می کاشت به بازار می‌برد. چون تمیز و پاکیزه بود و محصولاتش رو به ترزی چشم نباز در بسات خود میچید مشتریای زیادی داشت. زن و شوهر پسری داشتن به نام جم. پسری زیبا و خوش سیما و دوازده ساله که با وجود چون سنی قد بلندن بود. اون از سر عادت کنار بسات مادر می نشست و اون چرا مشتریا می خریدن براشون به خونه می برد و به خاطر این کار غالبا به اون شاخه ای گل زیبا، تکی کیک یا سکه ای ارزش می دادن. یه روز جم و مادرش مقدار زیادی سبزیجات به بازار بردن و روی میز چیدن. اونا تو سبدای کوچیک، گلابی، سیب و زردالوی نوبرانه هم چیده بودن. جم برای جلب مشتری با صدای بلند فریاد می زد. میوه تازه دارم. کلم و سبزی عالی دارم. خانوما سیب و گلابی و زردالوی نوبرانه دارم. همه چی رو ارزون می بیایید و بخرید. پیرزنی که از بازار می متوجه بازارگرمی پسر جوون شد. اون زنی اخمه و خشن به نظر می رسید و صورت گرد کوچیک و تیزی داشت که پر از چین و بود. چشماش قرمز بودن. دماغش نازک و نکدار بود و تا روی چونش می رسید. چوب دست بلندی داشت و به کمک اون لنگون و لرزون راه می رفت. و به نظر می رسید با هر گامی که برمی داشت ممکن بود که با دماغ روی زمین بیفته. اون با این وضع و حال یواش یواش خودشو پایه به مادر و پسر رسند. سرشو به این و وران ور داد و با صدایی نخرشیده پرسید. تو همون هنای سبزی فروش هستی؟ مادر جواب داد بله خودمم کاری داشتی؟ پیرزن گفت خواهیم دید تا ببینم چی میشه. حالا بذار سبزیاتو ببینم شاید اون چرا میخوام داشته باشی. و دستای سیاهاسخته نفرت انگیزش و تو سبد سبزیها فرو برد و اونا رو که با و ترتیب چیده شده بودن به هم ریخت. گاهی بعضیا رو نزدیک دماغش میگرفت و بو میکشید. زن پینه دوز از این کار پیرزن حالش داشت به هم میخورد، اما جعت نکرد چیزی بگه. خلاصه اجوزه پیر هرچی و تو سبد بود زیر و رو کرد و با قرولند گفت، آتا به درد نخور دریق از پنجاه سال قبل سبزیای آشغال. جم از این کار عجوزه اصابانی شد و با فریاد گفت تو عجب پیرزن بیتربیتی هستی اول همه سبزیا رو با اون انگشتای مثل چوب زیر زیرو رو کردی و جلوه دماغ درازت گرفتی حالا این سبزیا رو از ما میخره؟ بعدم میگی که آشغالم در حالی که آشپز فرمان روا هر روز از ما سبزی میخره. خره. نگاهی توند و تیز به پسر جوون انداخت و با نفرت خندید و گفت خب به از دماغ درازم خوشت نمیاد پس بد نیست تو چون این دماغی که تا روی چونت برسه داشته باشی. حرفش که تموم شد به سراغ کلم رفت و یکی یکی اونا رو تو دست گرفت محکم فشار داد و سر جاشون پرت کرد. اون پشت سر هم میگفت: گفت آتو آشقال، سبزیای آشغال جهن با نگرانی گفت اینقدر وحشتناک سرتو تکون نده. گردنت به نازکی برگای کلمه و ممکنه با این تکانای پی در پی بشکنه و کلت توی سبد سبزیا بیفته و دیگه کسی از ما خرید نکنه. پیرزن قه, قه خندید و گفت خب از گردن نازوکم خوشت نمیاد باشه اما کاری میکنم که کلت وسط دوشونت به تا نیفته سرانجام مادر طاقت نیورد و گفت اون چرندیاتو به بچه نگو اگه میخوای چیزی بخری لطفا عجله کن وقت دیگر مشتریارو گرفتی پیرزن گفت بسیار خوب هرچه تا میگی من این شیش رو میخرم اما میبینی که با چوب دستم به زور میتونم راه برم. پسرت باید اونارو رو به خونم بیاره. انعامش رو هم میدم. پسر جوان دوست نداشت این کارو بکنه و شروع کرد به گریه چون که از پیر زن میترسید. اما مادرش از اون خواست که کلمه رو ببره. اون فکر می کرد اگه به زنی پیر و ناتوان کمک نکنه کار بدیه. پسر، نالان و زاران کلمه رو تو سبت چید و دنبال پیرزن از بازار گذشت. بیشتر از نیم ساعت طول نکشید تا به جایی دور از شهر رسیدن. سرانجام پیرزن مقابل خونه خرابه ایستاد. اون قلاب کهانه زنگزدهی رو از جیب درآورد و تو سوراخ کوچیک در کرد. در ناگهان باز شد. جم همین که داخل رفت از تعجب شاخ درآورد. داخل خونه به طرز شکوهمندانه ای آراسته بود. دیواره و کف اتاقا مرمرپوش بودن. لوازم خونه از چوب آبنوس بود و در اونها طلا و سنگای قیمتی گذاشته بودند. سقف و کف تالار از شیشه بسیار زلال و لغزنده بود. جم ناباورانه نگاه میکرد و خشگ زده بود. پیرزند سوتی نقرهی در آورد و درون دمید. صدای سوت در تمام خونه پیچید. برند تعداد زیادی خوک هندی از پله ها سرازیر شدند. اما اون چه به جم عجیب می این بود که اونا روی پاهای عقبیشون راه می رفتن. پوسته های فندوق و به جای کفش پوشیده بودن و لباس های مردونه به داشتند. داشتن. کلاهایی که به سر داشتن، مطابق جدیدترین مدلای روز بود. پیرزن با فریاد گفت دنپایی هم کجان موجودات تنبل و با چوب دست خود به اونها زد و گفت تا کی باید اینجا به ایستن. خوب ها از پله بالا رفتن و با یک جفت پوسته نارگیل که آستر چرمی داشت بازگشتن. پیرزن اونا رو پوشید. اون دیگه نمی و تلو تلو نمیخورد. چوب دست و به کناری انداخت و روی کف شیشه ای تالار صاف و استوار راه رفت. بلاخره جلوه در اتاقی که ظاهرا آشپسخونه بود ایستاد وارد اونجا شدن. آشپسخونه پر قابلامه و تابه بود. میزا از چوب ماهون و سندلیا از بهترین چوب ساخته شده بودند. پیرزن با ظرافت تمام گفت بشین و جمع به گوشه مبلی هول داد. و میزی کچیک و جلوش گذاشت و گفت همینجا بشین. خیلی راه اومدی و بارتم سنگین بود. باید چیزی به تو بدم تا خستگیت برطرف شه. کمی صبر کن تا برات مقداری آش عالی بیارم. با خوردنش تا زمانی که زنده این منذش رو از یاد نمیبری با گفتن این حرف دوباره سود زد. ابتدا خوکای هندی با لباس مردونه بیرون اومدن. اونا پیش آشپزی بهتن به تند داشتن از کمربنداشون کاردهای آشپزی و ملاقه های آشخوری و چیزای شبیه اینا آویزون بود بعد از اونا دسته سنجاب لیله کنان اومدن اونا هم روی دو پای عقبیشون راه میرفتن و شلوارای گشتاد به پا روی سرشون کلاهای کوچیک مخملی سبز بود اونا شاگرد آشپز بودن و از دیوارا بالا میرفتن و از روی قفسه ها، قابلمه ها، تابه ها، تخم آرد، کره و سبزی ها رو می آوردن. پیرزن این و اون ور می رفت و جم میدید دید که داره قضایی مخصوص میپزه. بالاخره آش به جوش اومد و روش حباب بست. بعد اونو با ملاقه تو کاسه این ای کشید و مقابل جم گذاشت. او گفت خب پسرکم، حالا آش رو بخور تا ببینی من چه آدم خوبیم. تو هم میتونی آشپز ماهری بشی. البته اگه سبزی واقعی گیرد بیاد. خب، سبزی واقعی رو هرگز پیدا نخواهی کرد. حالا چرا مادرت سبزی اصل و واقعی نمیاره؟ عقل پسر قد نمیداد که به فهم اون درباره چه چیزی صحبت میکرد. اما آشو خوب میشناخت و از خوردنش کیف میکرد. واقعا خوشمزه بود. پدرش غالبا غذاهای خوبی میپخت اما هیچ کدوم از غذاهاش به لذیزی این آش نبود عطر سبزی‌ها و ادویه ها همه جا پیچیده بود آش مزه ملس داشت و قلیز بود غذا که داشت تموم میشد خوکای هندی بخور عربی سوزندن که به تدریج مثل ابری از بخار آبی رنگ فضا رو بوی خوشبوی بخور تقریبا داشت روی پسرک تاثیر میذاشت. به یادش اومد که باید برگرده و نزد مادرش بره. اما هر وقت سعی می کرد از جا بلند شه، احساس می کرد خوابالودتر می میشه و سرانجام روی همون مبل آرون به خواب فرو رفت. خوابای عجیب دید. فکر می کرد که پیرزن لباسای اونو در ورده و اونو تو پوست سنجاب بیچیده و اونو با بقیه سنجابا و خوکای هندی همراه کرده بود. همه ی اونا بسیار دلنشین و خوشرفتار بودن و به پیرزن خدمت میکردن. اون ابتدا یاد گرفت که کفشای پوسته نارگیل پیرزن رو با روغن تمیز کنه و اونقدر بماله تا برراخ شد. بعد یاد گرفت که بیدای ریزو جمع کنه کاملاً بماله و از علک ریز رد کنه تا آردی لطیف به دست بیاد و از آرد کارای پیرزن ویدندون نرمترین نونو بپزه. به این ترتیب اون از کاری به کار دیگه می میرفت و هر سال کارای تازه انجام میداد تا اینکه در سال چهارم، تو شقنش پیشرفت کرد و پا به آشپزخونه گذاشت و زیر دست شاگرد آشپز کار کرد. بعد سرشیرینی پس شد و با گذشت زمان به بالاترین مقام تو آشپزی رسید. اون تونست نست پرزحمت ترین رو درست کنه. اون دویست نوع مختلف گلوچه های گوشتی و آشهایی با تمها و سبزه های میپخت می پخت. اون پخت قضاهای زیادی رو یاد گرفت و اونا رو به بهترین شکل و خیلی سریع درست می کرد. جم هفت سال نزد پیرزن زندگی کرد. روزی پیرزن هنگام بیرون رفتن به اون گفت یه مرگ و سر ببره، پرش رو بکنه، شکمش رو با سبزیا پر کنه و وقتی اون به خونه بازگشت، اونو به بهترین نفس سرخ کنه. جم این کارا مطابق با روش پخت این نوع غذا دقیقا انجام داد. سر مرغ رو برید، اونو تو آب داغ فرو برد، با دقت کند و پوست مرگ رو انقدر مالید تا نرم شد. اون برای اووردن سبزی های معتر به انباری رفت. چشمش به گنجه این نیمه باز افتاد. این گنجه را قبلا ندیده بود. به داخلش نگاهی انداخت و تعدادی ثبت دید که از اونا بویی مطبوع و تند برمیخواست. اون سبدی رو برداشت در اون مقداری سبزی عجیب دید. ساقه ها و برگا به رنگ سبز آبیگون بودند. روشون شاخه گلی کوچیک بود که رنگ قرمز تند با لبه های زرد داشت. به گل خیره شد. اونو بو کرد و متوجه شد اطر عجیب تندی داره. پیرزن قبلا برای اون آشی پخته بود که این بو ماننده بوی همون آش بود. بوی گل خیلی تند بود و اونو به عطس انداخت. چند بار عطس کرد و سرانجام بیدار شد. پسر جوان روی مبل دراز کشیده بود و با تعجب به هر طرف مینگریست. اون با خودش گفت عجب! چه خوابای غریبی به سراغ آدم میاد. من سنجاب شده و با خوکای هندی و موجوداتی نظیر اونا همراه شده بودم. تو خواب دیدم که آشپز بزرگی شدم. اگه اینا رو برای مادرم تعریف کنم از خنده روده بر میشه. اون به خاطر خوابیدن تو این جای عجیب به جای که تو بازار کمکش کنم، حتماً منو سرزنش خواهد کرد. از جا بلند شد و آماده رفتن شد. به نظر می‌رسید که بر اثر خواب طولانی تمام اندامش خشک شده، مخصوصاً گردنش، چون که نمی‌تونست راحت تکون بده. به هماقت خود خندید، هنوز خواب زده بود، چون که با دماغ گندش به در و دیوار سنجابا و خوکا پشت سرش می آمدن. انگار اونا هم دلشون رو از اونجا بیرون برن. اون وقتی به در رسید، از اونا خواست که همراهش بیان، اما اونا رو برگردوندن و بازگشتن. اون قسمت شهر از جاده دور و پرت بود و جم نمی دونست از کدوم خیابون بگذره. اون از ازدهام مردم که تماشاش میکنن در تعجب بود. از حرفاشون اینطور فهمید که اونا یک رو تماشا می کردن. همه با صدای بلند می اون کوتوله زشت رو ببینید عجب دماغ درازی داره گردنش کو، بیگردنه اه آه دستای سیاه زشتشو زشتش رو تماشا کنید اگه برای دیدن مادرش عجله زیادی نداشت حتما به تماشای قوله و کتوله ها و موجوداتی مثل اونا که مردم در حرف می, می رفت. موقعی که به بازار رسید هنوز گیج و منگ بود مادرش جای همیشگیش نشسته بود و مقداری زیادی میوه در ثبت هاش بود از اینکه مادرشو مادرش غمگین می دید ناراحت شد مادرش برای فروش بار مشتریارو صدا نمیزد. زد اون هم اونجا نشسته و سرش روی دستش گذاشته و تو فکر بود جیم هرچی نزدیک تر می شد مادرشو رنگ پریده تر از قبل دید کمی درنگ کرد که چیکار کار کنه اما سرانجام خودشو به پشت سر مادرش رسوند و دستشو روی شونش گذاشت و گفت مامان چرا در فکری؟ از دستم عصبانی؟ مادر سرشو برگردوند و با فریادی که نشونه ترس و وحشت بود از جا پرید با فریاد گفت کتوله یه نفرت انگیز چی میخوای؟ از من دور شو. من گول حقه ها تو نمیخورم. جم که کاملا ترسیده بود گفت اما مادر جان چی شده؟ مثل این که حالت خوش نیست. چرا تو از خودت میرونی؟ هنه گفت گفتم از من دور شو و با عصبانیت به حرفش ادامه داد. تو هیولا با این حقه ها نمیتونی از من چیزی بگیری. پسرک با خودش زمزمه کرد، ای بای، حتما به سرش زده، حالا چطور بخونه برم؟ مادر عزیزم، خوب نگاه هم کن، من پسرت هستم. هنا رو به یکی از فروشنده های کنارش کرد و گفت، تا الان چنین آدم گستاخی دیده بودی، فقط یه نگاه به این کتوله ترسناک بنداز، باور میکن این کتوله پسرم جم باشه؟ تمام زنای کاسب اونجا جمع شدن و در این باره حرف زدن. اونا تا جایی که زورشون می رسید اونا سرزنش کردند. گفتن باید از خودش خجالت بکشه که سعی می کنه خانم حنا رو گول بزنه. اون هنوز قصه پسر زیباشو می خورد که هفت سال قبل اونو دوز بعد پسرکو تهدید کردند که اگه از اونجا نره به سرش می و لتو پارش می کنن. جنه بیچاره نمیدونست چه چیزی باعث اون وز شده. اون مطمئن بود که صبح اون روز همراه مادرش به بازار اومده. تو چیدن بسات به مادرش کمک کرده. به خونه پیرزن بار برده. اونجا آش خورده و کمی هم زده بود. اما حالا که برگشته اونا داشتن از هفت سال پیش صحبت می کردن. تازه اونو کتولهی حراسناک می دونن. چرا؟ چی به سرش آمده بود؟ وقتی فهمید که مادرش اونو نمیخواد و از خود میرونه با چشمایی پر از عشق و با قلبی اندوهگین به طرف پایین قیابون به سوی دکه پدرش رفت. با خودش فکر میکرد، حالا پیش پدرم میرم تا ببینم منو میشناسه. کنار در میستم و با اون صحبت میکنم. وقتی به دکه پدر رسید در آستانه در ایستاد و به داخل نگاه کرد. پینه دوز سرگرم کارش بود و تا مدتی اصلا متوجه اون نشد. به طور اتفاقی سرشو بلند کرد و اونو مقابل چشماش دید. کفش، نخ و هرچی تو دستش بود روی زمین افتاد و از ترس فریاد زد. خدای بزرگ، این دیگر چیست؟ پسر گفت اصر به خیر داد و گامی به جلو برداشت و ادامه داد. حالت چطوره؟ پدر با تعجب پاسخ داد. سخت مریضم آقا کوچولو. کاروکاسبی کاسبی رو به راه نیست. دست هم و پیر شدم. مزد شاگردم گرونه. جم پرسید. پسری نداری که کارتو بلد باشه و کمکت کنه؟ پیرمرد جواب داد. پسر داشتم. اسمش جم بود. تا الان باید بیست سالش شده باشه. حتما بلند قد و قوی شده. اگه اینجا بود به من کمک میکرد. ای، ای دل غافل. روزگار جفاکار. جم پرسید حالا پسرت کجاست؟ صداش می لرزید. جواب داد فقط خدا می دونه. الان هفت ساله که تو بازار گم شده. اونو از ما دوزدیدن. تا الانم هیچ خبری از اون نشده. جم از ترس فریاد کشید. هفت سال قبل؟ و پیرمرد گفت. بله دقیقا هفت سال قبل. انگار همین دیروز بود که همسرم نالان و زاران به خونه اومد و گفت که بچمون گم شده. من همیشه فکر میکردم و میگفتم یه روزی اتفاق خواهد افتاد. جم پسر زیبایی بود و همه اونو دوست داشتند زنم به اون افتخار می کرد و دوست داشت که اون اجناس خریداری شده رو به خونه‌ی آدمای مهم و بزرگ ببره شاید برای آیندهش خوب باشه اما من می‌گفتم مواظب باش شهر بزرگ و پر از آدمای بده خیلی مواظب جنب باش آخرش اون چه میشد اتفاق افتاد یه روز پیرزنی پیششون رفت و مقداری سبزی خرید بارش سنگین بود و زنم که آدم مهربول و خوش قلبیه به پسرمون گفت که بار پیرزننا به خونش ببره. از اون موقع تا الان خبری از اون نداریم. جیم گفت: گفتی هفت سال قبل این اتفاق افتاد پیرمرد جواب داد: بله هفت سال همه جا دنبالش گشتیم از خونه به خونه دیگه رفتیم خیلی اونا میشناختن و به اون علاقه داشتن. اما فایدهای به حال ما نداشت. کسی پیرزنو که سبزی خریده بود نمیشناخت. فقط یه پیرزن نوت ساله به ما گفت که او حتما پریه هربالین بوده که هر پنجاه سالیه بار برای خرید به بازار میاد. با حرفای پدر خیلی چیزا برای جم روشن شد. حالا فهمید که هرچی به ذهنش رسیده خواب نبوده و اون واقعا هفت سال تمام، به شکل سنجاب برای پیرزن کار کرده بود. در حالی که به این موضوع فکر می کرد، تمام وجودش سرشار از خشم می شد. هفت سال از جوونیش دزدیده شده و در ازای اون چه چی چیزی به دست آورده بود؟ تنها چیزایی که یاد گرفته بود، برقنداختن کفشای پوست نارگیری و سابیدن کف شیشهای تالار و یاد گرفتن آشپزی توسط خوکای هندی بود. اون همچنان در در ایستاده و به فکر فرو رفته بود. سرانجام پدرش پرسید: پسرم، کاری هست که برات انجام بدم؟ میخوای برات یک کفش راحتی بدوزم؟ و با لبخندی گفت: شاید دوست داری برای دماغت یه جا دماقی درست کنم. جم پرسید: با دماغم چیکار داری؟ چرا باید برام جا دماقی درست کنی؟ پیندوس دوست جواب داد، خب، هر کس ای داره. راستشو بخوای اگه دماغی مثل مال تو داشتم، حتما براش یک روکش زیبای چرمی درست میکردم. اینجا یه تیکه چرم قشنگ دارم که به درد محافظت از دماغت میخوره. اینجور که من میبینم باید دائما به در و دیوار بخوری. پسرک از ترس زبونش بند اومده بود. وجود دماغشو حس میکرد. چونکه کلفت و به اندازه نصف دست بود تازه میفهمید که پیرزن قیافه اونو هم دگرگون کرده و به همین دلیل بود که مادرش اصلا اون را نشناخت و کوچوله هراسناک نامیدش. اون گفت: «آقا آینه داری تا خودمو توی اون ببینم؟ پدر جواب داد پسر جواب قیافت به اندازه کافی درب و و نیازی به تماشای خودت تو آینه نداری. خب، منم اینجا آینه ندارم. اگه باقی خودتو ببینی به دکان سلمانی برو که پایین تر از اینجاست. پینه دوز با گفتن این حرف جم رو به بیرون دکان کوچیکش کشکش شد. راه و نشونش داد در دکان و بست و سرگرمه کار خودش شد. جم به طرف دکان سلمانی به راه افتاد اون سلمانی از زمان نوجوانیش میشناخت. وقتی به اونجا رسید گفت وقت به خیر اربن اجازه میدی خودم و تو آینت نگاه کنم سلمانی گفت با کمال میل و خندید و کسانی هم که تو مغازش بودن خندیدند. بعد سلمانی گفت تو جوون زیبایی هستی گردنی مثل قو داری دستات سفید و دماغت قلمیه. بی خودی داری وقت تو تلف میکنی. به هر حال هر که دلت میخواد خودتو تماشا کن. با این حرف سرمانی همه آهسته خندیدن. جمع طرف آینه رفت و با دیدن خودش قمی سنگین تو دلش نشست و مات و مپوت موند و اشک از چشاش سرازیر شد. با خودش فکر کرد مادر، حق داشتی که پسرتو نشناسی. اون حالا همون پسری که به وجودش میبالیدی نیست چشماش کاملا کوچیک شده بودن درست مثل چشای خوک دماغش بسیار بزرگ و تا روی دهان و چونش کشیده شده بود به نظر میرسید گردنش ناپدید شده و سرش تو سینش فرو رفته و بین دوشونش نشسته بود اون پسری قد بلند بود اما حالا انگار نصف شده و ای بیش نبود پتو شده و پشت و سینهش قوز داشت. پاهاش کوچیک و کلوفت شدن. اما دستاش مثل دستای یه مرد بزرگ و سیاه سوخته بودن. انگشتایی دراز و استخونی داشت. اون روزی و به یاد ورد که باره اول پیر زن دیده بود. به یاده افتاد و به اون حرفی بزنه از مغازه سلمانی خارج شد. تصمیم گرفت دوباره نزد مادرش بره. اون هنوز گوشه بازار بود. از او خواهش کرد تا با آرامش به حرفاش گوش کنه و روزیا که همراه پیرزن رفت و و برد به یادش انداخت. حتی بسیاری از وقای دوران نوجوانیشو تعریف کرد و گفت که پیرزن یه پری بود و اونو افسون کرده بود. طوری که مجبور شد هفت سال براش کار کنه. حتی نمیدونست به چی فکر کنه. داستان کوتوله خیلی عجیب بود و به نظر می رسید که تصمیم گیری بین پسر زیبای خودش و کتوله نفرت کاری غیر بود. سرانجام تصمیم گرفت نزد شوهرش بره و با اون صحبت کنه. سبدارو جمع کرد و به جمع گفت که دنبالش بیاد. اونا یه راست به دکه ی پینه دوز رفتن. سفر به دنیای پر رمز و رازه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 همه و همه و همه در کانال ترگرامیه هزار افسان داستان‌های افسانهای صوتی اتساین مهران دوستی